این داستان راپانزل روزی روزگاری زیر گمبت آبی آسمون زن و مردی بودند که خیلی دلشون میخواست بچه داشته باشند. کلبه اونا دو تا پنجره کوچیک داشت که به باغ زیبا و پر از گلی باز میشد. دور تا دور اون باغ دیوار بلندی کشیده شده بودن و هیچکس جرأت نمیکرد وارد اون بشه چون اون باغ به زن جادوگری تعلق داشت که همه از اون میترسیدن روزی زن در کلبش کنار پنجره ایستاده بود که چشمش توی باغ به باغچه‌ای پر از کاهوهای زیبا و باطراوت افتاد ناگهان حوض کرد که چند تا از اونا رو بخوره ولی میترسید هر روز که میگذشت، میل خوردن به کاهو در اون زن شدید میشد زن از اینکه میدونست دستش به کاهووا میرسه خیلی ناراحت بود رنگ پریدگی و افسردگی اون روز به روز بیشتر شد طوری که همسرشم هم مسترب شد یه روز مرد از زنش پرسید چی شده که انقدر ناراحتی؟ زن در جواب گفت اگه از اون کاهوایی که پشت خونه رویده کمی نخورم می میرم مرد که همسرش رو صمیمانه دوست داشت با خودش گفت به هر قیمتی که شده چند تا بوته از اون کاهوا رو میچینم. به هر حال بهتر از اینه که دست روی دست بذارم و شاهد مرگ زنم باشم. در تاریک و روشن یه شامگاه مرد از دیوار باغ زن جادوگر بالا رفت. وارد باغ شد و با شتاب چند تا بوت کاهو چید و برای همسرش برد. زن هم از اونها سالادی درست کرد و با اشتهای زیاد خورد. کاهو زیر دندون زن خیلی مزه کرد. طوری که بعد از اون دو سه بار دیگه از همسرش درخواست کرد که بره و چند تا کاهوی دیگه بچینه. مرد به اجبار قول داد که این کار انجام بده. غروب اون روز از دیوار بالا رفت. ولی وقتی از اون سوی دیوار پایین اومد، چشمش به زن جادوگر افتاد که همون نزدیکی ایستاده بود. مرد نزدیک بود از وحشت قالب توهی کنه. زن نگاهی قذبالود بهش انداخت و گفت به به چشمم روشن، تو از بالای دیوار پریدی مثل یه دزد وارد باغ من شدی و کاهوای منو دزدیدی، برای این کارت باید بهای سنگینی بپردازی. به مرد بیچاره جواب داد التماس میکنم منو ببخش. من نیاز مبرمی داشتم که این کار انجام بدم. همسرم از پنجره کاهوهای شما رو دیده بود و اونقدر میل خوردن به کاهو در اون شدید شد که میگفت اگه کاهو نخوره میمیره. وقتی جادوگر این حرفا رو شنید خشمش فروکش کرد و گفت اگر راست گفته باشی از این به بعد اجازه داری هر وقت دلت خواست بیای و چند تا کاهو ببری فقط به یه شرط اگر همسرت فرزندی به دنیا بیاره فرزندت رو به من بسپاری من مثل مادری مهربون از اون نگهداری میکنم. شوهر که در خطر بود به جادوگر قول داد که این کارو انجام بده بعد هم هر قدر کاهو دلش می‌خواست کند و با خودش برد چندان طولی نکشید که زن دختری زیبا به دنیا آورد. بیدرنگ جادوگر ظاهر شد و ادعا کرد چون قبلا مرد بهش قول داده باید بچه رو در اختیارش بذارن. اونا مجبور شدند بچه رو به جادوگر تحویل بدن. جادوگرم اسم بچه رو راپانزل گذاشت. راپانزل به زبان آلمانی یعنی کاهو. راپانزل زیباترین ترین ای بود که زیر آسمون کبود به دنیا اومده بود. وقتی دوازده ساله شد جادوگر اونو در برجی که نه پله داشت نه در ورودی و فقط یه پنجره کوچیک داشت زندانی کرد. هر وقت جادوگر میخواست به دیدن راپانزل بره میرفت زیر همون پنجره کوچیک میستاد و با صدای بلند میخوند راپانزل، راپانزل، موها تو بنداز. شاید بتونم بدون پله بالا بیام. راپونزل که موهای بافته طلایی بسیار بلند و زیبایی داشت وقتی صدای جادوگر رو میشنید موهاش رو رها میکرد. گیسوهای او از لبه پنجره به پایین آویزون میشد و جادوگر به کمک اونها خودش رو به برج میرسوند. دو سال به همین ترتیب گذشت. یه روز پسر پادشاه از جنگل میگذشت که دست برقضا راهش به طرف برج افتاد و صدای آواز زیبایی به گوشش رسید. این راپانزل بود که برای رفع دلتنگی با صدای دلکش و زیبای خود آواز می‌خواند. شاه شاساده به خونش برگشت ولی تاثیر اون آواز زیبا همچنان در قلب و روحش باقی مونده بود. برای همین از اون پس هر روز به اون جنگل میرفت و به اون آواز گوش میداد. یکی از روزها که شاهزاده پشت درخت ایستاده بود، دید که جادوگر به برج نزدیک شد و شنید که داشت می خوند، راپانزل، "راپونزل، راپونزل، موهاتو بنداز، شاید بتونم بدون پل بالا بیام." در این لحظه شاهزاده دید که گیسوی طلایی رنگ بلندی از پنجره آویزون شد و زن جادوگر به کمک اون به بالای برج رفت شاهزاده جوان با دیدن این صحنه به خود گفت اگه این نرد بونیه که با اون میتونم به بالای برج برم منم در اولین فرصت اینو امتحان میکنم روز بعد هوا گرگومیش بود که شاهزاده رفت کنار پنجره و شروع کرد به خوندن راپانزل راپانزل و بنداز شاید بتونم بدون پله بالا بیام بیدرنگ دختر موهاش را از پنجره آویخت و شاهزاده با اون موها از برج بالا رفت و وارد اتاقکی شد که دختر جوان در اون زندگی می کرد. راپونزل از دیدن مرد بیگانه ای که وارد اتاقک شده بود وحشت کرد. ولی پسر پادشاه نگاهی صمیمانه داشت و آنچنان با مهربانی صحبت می کرد که وحشت دخترک از بین رفت. شاهزاده گفت که صدای آواز اون تاثیر عمیق در روحش گذاشته و تا اونو ندیده بود آرو قرار نداشت. با شنیدن این حرف راپونزل فهمید که نباید بترسه. اون دو مدتی با هم صحبت کردن و بالاخره شاهزاده از اون خاصگاری کرد. با اینکه شاهزاده مردی جذاب بود و گفته بود که شاهزاده است دختر کمی تردید داشت. دست آخر با خودش گفت، بدون تردید اون منو بیشتر از مادر گرتل دوست داره. بنابراین دست در دست شاهزاده گذاشت و گفت، من همراه شما میام و حاضرم با شما ازدواج کنم ولی اصلا نمیدونم چطور باید از اینجا بیرون بیام. بعد ادامه داد، مگر اینکه هر روز کمی ابریشم برام بیارید تا اونها رو ببافم و یک نردبان درست کنم. وقتی بافتن تموم شد با اون از برج پایین میام و اون وقت میتونیم با اسب از اینجا دور بشیم شاهزاده قبول کرد و قول داد که هر شب به دیدنش بیاد تا کار نردبون تموم بشه چون جادوگر همیشه روزها به برج میامد جادوگر هرگز شاهزاده رو ندیده بود و روحش هم از این ملاقات ها خبر نداشت تا اینکه روزی راپونزل با لحنی محسومانه گفت مادر گرتل من دیگه نمیخوام آدم سنگینی مثل شما رو از پایین برج بالا بکشم چون به زودی پسر پادشاه میاد و منو از اینجا میبره جادوگر فریاد زد بد جنس نکنه دارم اشتباه میشنوم من تو رو از چشم همه دنیا پنهون کردم اون وقت تو منو فریب دادی با عصبانیت موهای زیبای راپانزل رو کشید و و با دست دیگه چند سیلی به صورت دختر زد. بعد با قیچی موهای زیبای اونو چید. زن جادوگر که خیلی سنگ دل بود دختر رو کشان کشان به جای دوردست و خلوت در جنگل برد و اونو با اندوه فراوانش تنها رها کرد. جادوگر وقتی دخترک رو در جنگل رها دید، گیسوی طلایی اون رو به لبه پنجره نصب کرد. وقتی پسر پادشاه اومد و همون آواز رو خوند، زن جادوگر موها رو به پایین رها کرد و پسر پادشاه از برج بالا اومد. ولی شاهزاده به جای راپانزل زیبا پیرزن جادوگر نابکاری رو دید که با چشمان کینهجو و بیرحمش بهش خیره خیره نگاه میکنه جادوگر با پوزخندی فریاد زد فکر میکنم اومدی عروس محبوبت رو از اینجا ببری ولی مرغ از قفص پرید گربه اونو از اینجا برده و همون گربه میخواد با پنجه هاش چشمای تو رو از حلقه بیرون بیاره راپونزل گم شده و تو دیگه اونو نمیبینی شاهزاده که انگار از شنیدن این حرف دچار جنون شده بود از پنجره برج پایین پرید و روی خار و تمشک های جنگلی زیر اون افتاد. او با این کار از شر جادوگر نجات پیدا کرد ولی خار به چشمهاش فرو رفت و کور شد. بعد از این حادثه شاهزاده در جنگل سرگردان بود. ریشه گیاهان وحشی و تمشک می‌خورد و از دوری عروس محبوبش عشق می ریخت و ناله می کرد او یک سال تمام با فلاکت و بیچارگی سرگردان بود تا اینکه سرانجام به همان جای خلوتی رسید که راپانزل در اون زندانی بود وقتی نزدیکتر رفت صدایی شنید که به نظرش آشنا اومد کم کم در میدان دید راپانزل قرار گرفت و راپونزل از پشت عشقاش بلافاصله اون رو شناخت دو قطره از عشقهای راپونزل روی صورت شاهزاده ریخته شد و زخمهای اونو پاک کرد و بینایش رو برگردوند بعد هم شاهزاده راپونزل رو به قلم سلطنتی خودش برد اونها با هم پیمان زناشویی بستند و از اون به بعد با خوشی و شادمانی با هم زندگی کردند